یک روز صبح میروم بساتم را کنار نرده های دانشگاه میگسترانم. ابتدا کمی خجلت زدم و گیج و نامتعادل در خانه صدها کتاب کهنه و نیمدار را روی هم و در کنار هم چیده ایم از بعض کتاب ها حتی دوتا دارم یک بسته بزرگ از آنها را آوردم بساتم را پهن میکنم. و خودم به دیوار سنگی پای نرده تکی تکیه می دهم، اصل می خندد. نمی توانی، میتوانم. نمی توانی، می نمی شود. می شود. کار تو نیست، کار من هست، فقط پا اندازی کار من نیست، فقط حرف زشت نزن، تو جاسوسی هم نمی کنی. آن هم نوعی از همان است که گفتم، تو رشف هم نمی کنی. آن هم نوعی از همان است که گفتم پس هر کار خلافی نوعی از همان است که گفتی نوعی از همان است که گفتم این چند از آقا بالای صفحه اول نوشتم جوان به بالای صفحه اول و به من نگاه می کند. پول را میدهد و میرود. فرار می کند و نگاه می کنم. قدری عرق کردم آدمهایی که بی اراده توقف می کنند یا میل به آن دارند که مغلوب نشوند یا کهن خری را کاری شرماور می دانند یک بری می ایستند یک شانشان مردد به جانب بسات من است انگار که در حال عبورند و هیچ چیز نمی تواند آنها را متوقف کند نام کتابها از زیر نگاه هایشان لیز می خورد و رد می شود پی چیزی نیستند یکبری نگاه می‌کنند و میروند. زیر کتاب‌ها چادرشب چادر شب انداختم که چندین سوراخ دارد مقداری هم وصل کاری آبرانی هستند که بی به خیشند می‌ترسند که اسیر یک کتاب شوند و کلاهی سرشان برود هنوز نخریده به فکر پس دادنند و اینکه فروشنده پس نگیرد راحت نیستند کج می کج نگاه می کنند و پیوسته نگاه از کتابها ها بر می گیرند و به دیگران نگاه می کنند تا ببینند آنها به چه کتابهایی هایی خیره شدند شهرستانی ها مهربان تر و جدی تر از مرکزی ها به کتاب می نگرند در چشمهایشان نوعی اعتقاد هست آنها که چون باتمه می زنند و مثل مرغابی به جلو می خزند واقعا پی چیزی می گردند. آنها دائما قیمت می کنند قیمت های من خوب است. حتی کتاب های را زیر قیمت پشت جلد می گویم. دلم میخواهد. نمیخواهم دست خالی به خانه برگردم. یکی آهسته و رازمندانه می گوید، این را به این قیمت نفروش. نایاب است. تجدید چاپ هم نمی شود. من دارم و الا به دو برابر این قیمت میخرریدم. همان هم دو برابر بخرم، همی بالاتر می توانم گرانتر بفروشم این را هم خیلی ارزان گذاشته ای این کاره نیستی نه؟ نه برادر نه عیب ندارد حوصله داشته باش قیمت عشق همیشه بیش از تحمل آدمی زاد بوده است باید اما سخت است که زندگی را به یک آشغانه آرام تبدیل کنی باید اما سخت است میدانم. اینها را که بفروشی؟ تمامشان را از خانه آورده ای نه؟ باز پیدا نمی کنی که بیاوری و بچینی و بفروشی مجبور میشوی بروی سر کار دیگر مرا می شنوی. باید با احمد آقا مددی که سران چار راه بیکار کنار روزنامه فروش نشسته و سوت میزند زند آشنا شوی برو نزد او و بگو که تو را معرفی کرده او کارش همین است که برای آدم مثل تو کتاب جور کند عذیتت هم کردند؟ فقط همان بیست و سه روز اول بگذاریم این را تا سه برابر قیمت هم بگذاری می رود این را اصلا رو نکن دردسر دارد مرا میشنوی تو آذری هستی اثر خوب است کار دلنشینیست است درآمدش هم خیلی بیشتر از معلمی است مرد شوی بازنشستگی را ببرد این کار کاملا در اراده خودمان است که کی باز کنیم کی ببندیم که ناگهان آشوب می شود چند پای پوتین پوش روی بسات هم فرود می آید می شنوم اینجا چه کار می کنی؟ کی اجازه داده بساطت را اینجا ولو کنی؟ و کتاب ها رو می بینم که زیر سم ستوران له و لورده و اوراق می شود کتاب ها مردم با فاصله ایستادند و نگاه می کنند. تو گفتی عاشقان تنها نیستند تنها نیستند اما ما که هستند درد ملک عاشقان است معموران با لگد کتاب ها را پرواز می دهند یا توی جوی آب راکد می اندازند و یا با زحمت خم می شوند و برخی را جر می دهند جر می دهند دیگر کاری نمی شود کرد مردم با فاصله ایستادند و نگاه می هیچکس هیچ کس نفس نمی کشد اعتراض نمی کند اعتراض در قلبها می ماند تا شکوفه کند ناصر خسرو قبادیانی کوبیده می شود تهوه سارتر به مهر لگدی گلین ممهور می شود حافظ کهنم دوتا داشتم تکه تکه می شود گزیده غزل های مولوی اجازه هست آقای برشت چشمهایش هایش بزرگ علوی جای خالی سلوچ دولت آبادی همسایه های محمود صد سال تنهایی دو جلد قرآن جیبی چندین جلد از کتاب های برگزیده شاهکارها بیش از صد جلد بود شاید کم از ده جلدش را فروخته بودم من نگاه میکردم بعد ناگهان، ناگهان، نعر زنان میدوم مغلها، مغلها، مغلها برگشتند و میدوم وسط خیابان درست روبروی انتشارات تهوری و بر سر سرزنان نعره میکشم مغلها، مغلها، مغلها آمدند و میشنوم همچون پجباکی که دیگری هم میگوید و میشنوم که تنی چند میگویند و جماعتی و ملتی و تمام تاریخ فریادهای هر آسنگیز میکشد که مغلها، مغلها و میبینم که مأموران سوار و پیاده با سپر و بی سپر به مردم حمله میکنند و میبینم که کسانی جلوی کتاب فروشی های آن طرف خیابان هم ایستاده اند. مغول ها، مغول ها مغول ها مغول ها مغل ها یک مغول کمان بر سر دست تیری از چله می کشد و در کمان مینشاند. نشاند ستون کرد چپ را و خم کرد راست خروش از خم چرخ چاچی بخواست قضا گفت گیر و قدر گفت ده و من گفتم اصلبانو هیچ چیز مثل خود استبداد استبداد را رسبانه می کند و فضا پر شد از نعرهای کوه شکن آسمان شکاف مغلها مغلها و خیابان پر شد از زربها و دویدنها و زمین خوردنها و بگیر و ببند و بکوب و بزنها و اصل همچنان که می خندید و به چادر شب تک تک نگاه می کرد گفت دیگر این را چراوردی خانه خب لازمش داریم باید مرتبش کنیم برای جای دیگر. مغلها همه ایران را که هنوز تصرف نکردند. اصل میخندد و میگوید: خوشبختی همیشه به شکل خوشبختی نیست. ما خوشبختیم. شکنجه شدگان خوشبخت و آنها سیه شکنجه کنندگان سیاهبخت. صدای زنگ در برخاست. اصل گفت محکم باش و این همه ی حرفی بود که دلم میخواست او در آن لحظه بزند در را بی آنکه بپرسد کیست گشود بی خیال آنجا چهار نفر یا پنج نفر ایستاده بودند همه شاید با هم سلام کردند شاید اما بسیار شرم زده اصل گفت سلام به همه بفرمایید جوان اول لهجه را دریافت و با آذری گفت مزاهم نمیشویم حرفی داریم این رفیق من حرفی دارد میشنوید اصل به آزری جواب داد چرا نشنویم اما به آزری نگویید شوهرم گیلک است آزری را هنوز خوب نمیداند گفتم او هم گیلکی مرا خوب نمیداند و همه لبخند زدن و برودت قدری عقب نشست جوان دوم یک بسته کوچک در روزنامه پیچیده را دراز کرد طرف ما من نفر سوم را شناختم پویا بود مرد صاحب بسته گفت باید قبول کنید ما همه با همیم امروز نوبت شماست فردا نوبت ما اصل بیان که نیم نگاهی به من بیاندازد محکم دستش را دراز کرد و بسته را گرفت قبول می‌کنیم. خیلی هم ممنون جایی می نویسم. پویا شادمانه به من گفت این مرد آقای مددیست که در با شما حرف زده بودم حالا خودش آمده دیگر که نمیگذارند بسات پهن کنم مددی گفت قمی نیست ما یک شاگرد برایتان میگیریم می گیریم که به جای شما کنار بسات بیستد نصف نصف ببرید کتاب را شما می دهید کار را هم شاگرد شما می کند. من این میان چه کارم که نصف ببرم پویا میگوید شما باید کارتان را بکنید، کار خودتان را. به هر حال جا عوض می کنیم، من که به شما گفتم، عاشقان هرگز تنها نبودند. اصل آسوده می خندد. تو، چای بهاره لاهیجان داریم، گل گل، برای دم میکنم. وقت نداریم، بعدها شاید، دوست دارم رسید بدهم بابت این بسته. بعدن بدهید به آقای مددی، خداحافظ، مددی میگوید شاید بتوانم یک زیرپله برایتان جور کنم که راحت تر باشید. قدری پول می جور کنید ؟ بله. حتما. بانوی خوب آزری من، عشق آسان نیست، اما عاشقان هرگز تنها نبودند. زندگی من زیر پوتینهای های چند معمور به زیبایی عرس پیش می رود و به گستردگی دریای خزر آرام می بخشد. تا برکه های حقیر دغدغه را دریا کنی می دوست چرا که هیچ دریایی هرگز از هیچ طوفانی نهراسیده است و هیچ طوفانی هرگز دریایی را غرق نکرده است